بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله و على محمد من و آل الطاهرین صیامه باریت الل الله تعالی, تعالی فرج شریف و روحی و ارباب العولمین لتواهم سلام و خیر مقدم خدمت خوزنای عجمد، اساتید معظم، دانش گرامی و خوشفقتی خودم رو از حضور در این جمع به این اعلام می میکنم و به عنوان اولین نشست از مجموعه نشست های این مدرسه بحاره با موضوع وحدت شخصی وجود مجبورم که مقدماتی رو اشاره کنم که ای باشد بر بحث خودم و بحث اساطید دیگری که از این پس وارد جزئیات مباحث خواهند شد و طبیعتا فرصت ورود در این مقدمات دیگر نیست این نکته رو هم ارز کنم که نفس ورود موضوعی در مباحث نقد تصوف یکی از ضرورت‌های جدی حوزه مطالعات عرفانی و تصوفه تا خون در باب تصوف هم کلیت این فرقه و جریان فکری و معنوی و هم در باب بخش‌های مختلف این مکتب بحث‌های مختلفی شده از آداب و اونها سخن گفتیم از جهان بینی و مبانی نظری اونها بحث شده از آثار و پیامدهای حرکت تصوف در جهان اسلام سخن گفته شده و تا حدود زیادی هم میتوان گفت این بحث ها به یک نوع اشباع شده و ادبیات خوبی رو در عرصه های علمی تولید کرده اون چیزی که معمولا ما امروز و در این سطح معمولا باش مواجهیم این است که کسانی در پاسخ به نقدهایی که نسبت به تصوف میشه از گوناگونی ها آداب و روکرت های صوفیان سخن میگهد به اعتقادشون بر این است که آنچه شما یا ناقدی در بحث تصبف مطرح میکنه این مدعای اصلی صوفیان نیست یا تفسیرها و قرائت‌های مختلفی از این عناوین وجود داره این دوگانگی، این ایهام در اندیشه های صوفیانه سبب شده است که هم کسانی سوء استفاده کنند و با این انوان زیر بار نقدها و اشکالات نرند یا کسانی ناآگاهانه به دلیل همین ایهامها تسلیم اندیشه های صوفیانه بشند و گاه این اندیشه ها رو بر معارف دینی هم تطبیق کنند مطالعات موضوع محبر. که در اون یک موضوع مشخص از ابعاد مختلف با تقریرهای مختلف مورد بررسی قرار میگیره این هست و داره که این گونه بدفهمی ها یا ابهام و ایهامات رو تا حدودی کنار میگذره و به جای اشخاص افراد و گروهها اندیشا روی میز مطالعه قرار میگیره این مدرسه بحاره وحدت وجود میتواند این نتیجه رو داشته باشه که ما رو به جای درگیر کردن با نام ها و نشان ها یا تقریر های بسیار کلی و عمومی از مبحث وحدت وجود وارد جزئیات کنه و معلفه های اصلی یک عقیده رو روی میز بگذاره. حالا کسانی معتقدن ما چنین اعتقادی نداریم اعتقاد دیگری داریم بسم الله اون اعتقاد هم با دوی میز بیاد گفته بش. این مقدمه را ارز کردم برای این که اهمیت این گونه مطالعات رو در حوزه تصوف فجوری ارز کنم و به گمانم اگر این ادامه پیدا کنه و دها ده مسئله ای که ما در حوزه تصوف داریم یک یک موضوع چنین مباحثی قرار بگیره احتمالاً افق آینده مطالعات ما در اشیاء تصوف و عرفان تغییر خواهد کرد <تصفيق> اما اون چیزی که امروز بعنوان وحدت وجود یا وحدت شخصی وجود گفته میشه دقیقا به چه معناست من در آواز خیلی کوتاه حاصل مجموعه گفته ها و تحقیقات این موضوع رو تقدیم حضورتون خواهم کرد البته چون مختصر است طبیعتا انتظار ورود در جزئیات نیست و سپس با یک برش و روی که خواهم گفت ادله عقلی وحدت وجود رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم یا گزارشی میدیم از نقدهایی که در این زمینه وجود داره خب همونطوری که میدانیم در سنت تاریخی صوفیان ما گفته شده که نظریه وحدت وحدت عالم وحدت هستی یکی از مؤلفه‌های مشترک همه فرقه های صوفیان است. اما این رو هم گفتن که وحدت در اینجا لزوماً به یک معنا نیست در یک تقسیم بندی کلی گفته شده که وحدت به دو قرائت در تاریخ تصوف ایرانی یا اسلامی وجود داشته در یک قرارت اصطلاحا امروز بهش وحدت شهودی میگن و قرارت دوم رو وحدت وجودی میگن وحدت شهودی معناش این است که یک سالک یک شخص معتقد و متصل به قطب معنویتی در مسیر کمال خودش در مسیر سلوک خودش به جایی می رسد که جز یک حقیقت در عالم نمی بیند و هرچه هست و هر چه دیگر است غیر از اون در پرتوب وجود اون واحد حقیقی از دیده سالک و دیده عارف مهر می شه. این وحدت شهودیست وحدت شهودی با کثرت وجودی هیچ تنافی ندارد. یعنی ممکن است عارف معتقد به وحدت شهودی باشد در این حال معتقد است به لحاظ هستی شناختی کثرات مختلفی هم در عالم هست. این محل بحث این دوره ما نیست. گروه دوم یا دسته دوم از نظریات مربوط به وحدت عرفانی کسانی هستند که معتقد به وحدت وجودند که اهم مهمترین تقریر نظریه این دیدگاه رو گفتن در اندیشه ابن عربی مطرح شده اما پیش از او صوفیان این رو مطرح کردند پس از او هم هم برخی صوفیان و هم برخی عالمان عرفان نظری به این نقد به این دیدگاه و نقل و بحث کردند این وحدت وجود در معنای کلیش به چه معناست؟ حالا قبل از که من معنا رو ارز کنم فقط خیلی سریع ارز میکنم در اینجا چون قرائت‌های مختلفی وجود داره یا محققانی گفتن که چنین قراعت وجود داره من تذکر رو خیلی سریع بدم بگذرم که آنچه ما در اینجا داریم میگیم ممکن است نظریات بدیل دیگری هم داشته باشد دیدگاه هایی که از این افراتی تر به مسئله تصوف یا ارفان نگاه میکنند یا کسانی که نه از دیدگاه صحیح ارفانی معتقدند که واقعا این دیدگاه و این تلقی تلقی نادرستی است و باید این رو تصحیح کرد. اونجوری من در اینجا عرض میکنم تقریبا دیدگاه رسمی و دیدگاه معتدل و وسط در اندیشه وحدت وجود صوفیانه یا عرفانی است. در بین خود عرفای ارفان نظری یا کسانی که سلوک صوفیانه خاصی داشتند در طول قره های اخیر یه استلاحی مطرح شده تحت عنوان عرفای شامخین یا جهله صوفیه معمولا در کتاب های ارفان نظری گفته میشه آنچه ما در اینجا به عنوان وحدت وجود میگیم منظورمون دیدگاه عرفای شامخینه در مقابل این دیدگاه جهله صوفیه قرار دارند که نوعی از وحدت وجود میگن که ما در ارفان نظری یا در بین عرفای شامخین چنین دیدگاهی رو قبول نداریم یک اصطلاح هم در ادبیات غربی وجود داره اشاره میکنم و رد میشم معتقدند امروز نظریات وحدت گرایانی ارفانی در دو روی کرد کلی قابل تقسیمه یک روی کرد روی کرد و یک روی کرد روی کرد پاننتیزمه رو به یه ترجمه تحت اللفظی همه خدایی معنا میکنیم اما به معنای دقیق کلمه نظریه وحدت وجود در درون همین پاننتیزم می گنجه پاننتیزم رو همه در خدایی به صورت لغوی ترجمه می‌کنیم و تطبیق می شود بر کسانی که اساسا هر گونه رو منکرند و معتقدند تمام کسرات از آغاز تا پایان همه موهوم است خیالی است هیچ گونه فرز کسرتی در هیچ مراتبی از جهان هستی وجود نده حالا آره شاید بشه گفت پاننتیزم همه در خدایی همون دیدگاه جهله صوفیه است و پاننتیزم این همه خدایی یا وحدت وجود در یک تقریر روشنش این اون دیدگاه عرفای شامخین را هم شامل میشه این بحث و گفتگو و جدالهایی هاییست عزیزان میتوانند در تعیقات معاصر در این باب نگاه کنند هم در بین غربیان و تصبف شناسان غربی وجود دارد هم در بین محققان وطنی خودمون در باب تصوف این رو هم باز اشاره کنم که مقدمه بحثمه در بین آلمان شیعی معاصر کسانی که به حوزه دانش فلسفه و علوم عقلی گرایش دارند در باب اینکه آیا وحدت شخصی وجود به معنایی که ما در اینجا میگیم مورد قبول است یا نیست یک اختلاف نظر فاحش وجود داره تقریبا میتوان گفت سه گروه عالمان متمایل به فلسفه در این دوره معاصر هستند که نسبت به وحدت وجود اظهار نظر کردند. پاری از اینها اساسا با وحدت وجود به معنای وحدت شخصی وجود مخالفند. به سختی انکار می‌کنند، ادله اون را رد می‌کنند و در نهایت معتقدند که این دیدگاه با دیدگاه دینی سر سازگاری نداره. عنوان نمونه استاد بزرگوار مرحوم آید الله مصباح یزدی از این دستند که علا رغمه که وحدت تشکیکی وجود رو به معنای حکمت متعالی میپذیرند ولی به کلی با حوزه وحدت شخصی وجود کنار نمیان و اون رو باطل میدونند دیدگاه دومی وجود دارد در نقطه مقابل این که وحدت وجود رو نه تنها میپذیرد و ادله اون رو معتبر میشه بلکه به بل لوازم او و همه لوازم او تنید به اعتقادش بر این است که وحدت وجود در معنای ناب و خالصش مورد پذیرش مرحوم آی حسینی تهرانی که در آثار مختلفی نظریه وحدت وجود رو تأیید میکنه و گاه آثارش رو هم در زندگی نامه خودش مینویسه و گاه این آثار هم بسیار فاش خلاف مکتب تلقی میشه و خلاف ظاهر آیات و روایات و عقل از این دسته دوم هستی دسته سوم کسانی هستند که وحدت وجود رو میپذیرند اما یا در ادله و بعضی از عدلهش ایراد میگیرند یا تقریری از وحدت وجود را امیدند که میخواهند اون لوازم فاسد وحدت وجود صوفیه برش مترتب نشد بر این باورند که ما میتوانیم تفسیری از وحدت وجود ارائه کنیم عدلی به سود این نظریه اقامه کنیم اما آنچه صوفیان میگفتند یا آنچه این گروه دوم برو باورند بر این نظریه و تقریر ما مترتب نمیشه چون خود شرحی دارد و داستان مفصلی فقط دوستان رو به دو کتاب ارجاع میدم یکی کتاب مهر تابان و دیگری کتاب توحید علمی و عینی که در اونجا گفتگوی مرحوم علامه تبا با مرحوم آی حسینی تهرانی هست که ایشون کاملا مسئله فنای ذاتی رو میپذیره و مرحوم آیتوا توی ای انکار میکنن و در کتاب دیگر مکاتبات میان مرحوم اسحمد کربلایی هست و هاشمالدین دو اصفهانی دوباره این اختلاف در اونجا وجود دارد که تقریری که از اسحمد کربلایی بسیار متمایل است به اون وحدت وجود خالص و صریح اما در نقطه مقابل مرحوم واشبندوسی اشباهانی نقد می کنند به اینو وحدت وجود رو نمیپذیرند با تفسیر دیگری ارائه کنند این نکات را عرض کردم که مقدمه این arz من باشد که در بین برخی از آلمان معاصر ما فیلسوفان معاصر کسانی هستند که عرفان رو به وحدت وجود را میپذیرند، اما لزوما معتقدند تمام آثار مترتب بر او در اندیشه تصبف وجود نداره یکی از این شخصیت ها که من میخوام بحث امروزم رو مبتنی بر گزارشی از دیدگاه های ایشون و در نهایت نقد این دیدگاه و نگاهی کلی به ادله عقلی وحدت وجود اشاره کنم استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آمولی هستند و از فیلسوفان معاصری هستند که یک تقریر از وحدت وجود رو میپذیرن خیلی سریع بگم تقریر ابن عربی از وحدت وجود رو ایشون میپذیرن و اون رو بانوان یک نظریه در کار خودشون دخالت میدند انبته طبعا ایشون از روح سومی هستند که اون وحدت وجود صوفیانه یا جهله صوفیه رو طبعا قبول ندارند و در آثار و نتائجی که برش مترتب میشه قائل به تفصیل میشن پاره از اینها رو میپذیرند. برای مثال در تعبیل آیات برای برای آره ای هم نمیپذیرند. مقدمه ارز کردم برای این نکته عنوان بحث بنده این بود که بررسی عدله عقلی نظریه وحدت وجود بود من در بحث امروز با مشورت مدیران این مدرسه تابستانی این گزارش رو خواهم داد از دیدگاهی که استاد بزرگوار ها رایتلا جوادی آمولی دارن در نقد عدله عقلی وحدت وجود یعنی به جایی که خودم از طرف خودم این نقد ها رو وارد کنم گزارشی میدم از شخصیتی که هم اصل وحدت وجود با یه تقریری رو قبول داره و هم در این زمینه با نگاه دقیق فنی وارد شده و این ادله رو مورد بررسی قرار داده ایشون در شرحی که بر تمیید القواعد ابن ترکی دارن که تحت عنوان تحریر و القواعد منتشر شده در فصهای پایانی بخشی رو اختصاص میدن به نهقدهای بر ادله وحدت وجود و در یک کلام ایشون معتقدند کل ادله تا قانون برای وحدت وجود ارائه شده هیچ کدام اعتبار عقلی ندارد بعد خود ایشون مبتنی بر یک دیدگاه از علامه تبا در تقریر برهان صدیقین معتقدند که این برهان صدیقین رو میتوان به عنوان یکی از عدله عقلی وحدت وجود ارائه داد یا اعتقادشون این است که به پیروی از کاری که صدر این در جلد دوی اسفار انجام داده ما از طریق تحلیل دقیق علیت می توانیم نوعی برهان برای وحدت وجود ارائه کنیم یعنی ایشون هشت برهانی که تا پیش از خود ایشون بر وحدت وجود اقام شده همه اینها را رد میکنند. دو برهان رو بر اساس یک تفسیری از متون موجود یا گذشت به عنوان دلیل عقلی می پسیدن من در اینجا میخوام اون هشت برهانی که ایشون اقامه میکنن و در واقع استقرام میکنن و هایی که وارد میکنن رو یه گزارش میدم و بعد در پایان بگم متاسفانه دو دلیلی هم که ایشون بر وحدت وجود اقام می کنند نااستواری است و این دو دلیل هم مانند هشت دلیل دیگر راهی برای عقلی عقلی وحدت وجود باز نمی کنند. قبل از ورود در این نقل و نقد برای عقلی وحدت وجود از دیدگاه استاد جوادی آمولی من در مقدمه به اشاره خیلی کوتاه تعریف وحدت وجود شخصی رو اشاره میکنم همه عزیزان اصحاب پژوهش و علم و دانشن فقط مین باب مرور خیلی کوتاه این رو مطرح میکنمد دوستان میدانند که این نظریه وحدت وجود در این بافتی که ما امروز داریم بحث میکنیم اصطلاحاً معروف شده است به وحدت شخصی وجود در بین اصحاب معقول در طول این هزار هزار و خردهی سال میدانیم در باب هستی شناسی چند نظریه وجود داشت چهار نظریه وجود داشت که یکی از نظریه ها نظریه وحدت شخصی وجوده چهار نظریه اصلی یک نظریه تبایون وجودات بود نظریه مشایان ابن سینا و پیروانش اینا اساسا متقدن بین وجود خدا و خلق نه تنها وحدت وجود ندارد به معنای یکسان انگاری بلکه کاملاً تبایون هست نظریه دوم که در بین اشراقیان مرسوم بود وحدت وجود و کستت موجود بود همون چیزی که اصالتاً به ذو تعلق معروف است که وجود واحد است اختصاص به حق دارد اما موجودات متکثرند همه عالم هستی پر از موجود است و متکثر اما ذات حق که وجود به او منسوب است یکی بیشتر نیست دیدگاه سوم که در حکمت متعالیه مطرح شد و قدمی به سمت وحدت وجود برداشت جمع میان وحدت و کسرت در مراتب موجودات بود وحدت وجود در این کسرت وجود یا وحدت موجود در این کسرت موجود اینو هم میتوان گفت این دیدگاه معتقد است که ما میتوانیم به آلم هستی هم اطلاق وحدت کنیم به تمام موجودات هستی از حفت اعلی تا هیولای اولا هم اطلاق وحدت کنیم هم اطلاق کسلت چرا اطلاق وحدت می کنیم به اعتبار وحدت نوعیه چون معتقدیم برخلاف دیدگاه دوم که بین واجب و ممکن تفصیل قائل می شود در کل عالم اون چیزی که تحقیقت دارد وجود است و وجود از اون جهت که وجود است یک حقیقت واحد بیشتر نیست خودت خودت یک وجود واحد بیشتر نیست اما این وجود یک واحد شخصی نیست یک واحد است، یک سینخ وجود است که در یک مرتبه بر واجب تالا اطلاق می شود در یک مرتبه بر اغور اطلاق می شود در یک مرتبه بر عالم ماده و احسان اطلاق می شود همه ای اینها وجودند و موجودند پس می توان به وحدت وجود قائل شد اما وجودات متکسرند موجودات متعددند پس این قارب کستت وجود میشیم پس نظریه وحدت تشکیکی صدرایی وحدت وجود است در این کستت وجود نظریه وحدت شخصی رو قبول ندام دیدگاه چهارم که به تیفی از آلمان گفتیم از جهله صوفیه تا و رفای شامخی نسبت داده میشه استلاحاً با عنوان کلیه وحدت وجودش یاد میکنیم وحدت شعود هم عرض کردیم یک زوق است تا یک تفسیر هستی شناسانه میگه آرف اینگونه می بینن نه اینکه واقعیت یک واقعیت بیشتر نیست دیدگاه چهارم که وحدت حقیقی وجود در عالم قائل است سه ادعای اصلی رو معتقد یک اینکه در جهان در کل نظام هستی یک واحد هستی بیشتر نیست وجود یک وجود یگانه است هیچ گونه تعدد هیچ گونه هیچگونه هیچ هیچگونه در اصل وجود فرض ندارد از این جهت بشمیم وحدت شخصی دوم این وجود واحد شخصی ضروری است هیچ جهت امکانی در این وجود نیست طبیعی هست وقتی وجود منحسد در واحد شد نمیتوان اون وجود واحد رو ممکن دانست با بیم وجود واحد, واحد واجب است ضروری است ذاتا این وجود ضرورت دارد، یک واحد وجود ضروریست. نقطه سوم و ویژه سوم این است که این ضرورت ضرورت عذلی است. نه فقط ضرورت ذاتی است ضرورت بشرت موضوعه بلکه ضرورتی است که ازلن و ابدا، این, این وجود رو در بر میگیره، این وجود واحد از ازل تا عبد در ضرورت ذاتی خودش منغبره پس معنی معنای این دیدگاه این است که شما هیچ چیزی را در عالم نمیتوانید پیدا کنید در کل نظام هستی که اطلاق وجود و موجود بر او بکنید و او وجودی در کنار وجود حق باشد ما یک وجود حق حقیقی داریم که این وجود حق حقیقی دارای ضرورت است. بقیه کسرها چی هستند؟ میگه اینا دیگه بود نیستند بود منحصر در یک واحده اونا چی هستند؟ نمودند اونا چی هستند؟ ظهورند اونا چی هستند؟ تجلیات؟ یه اصطلاح این باورمندان وحدت وجود دارند که لازمه این تعریفی است که الان از نظریه وحدت شخصی وجود کردیم و اون تعریف این است که از دیدگاه قائلین به وحدت شخصی وجود واحد موجود در عالم وجود لا به شرط است. این باز تأکید میکنم چون در نقد هایی که بر این نظریه گزارش خواهم داشت این عبارت تکرار میشه نظریه وحدت شخصی یه ادعای خیلی بزرگ داره که آنچه اطلاق وجود برش میشود اون یقانه ای که متصف به وحدت میشود و ضرورت ازلی دارد حیث تحققش حیث لا به شرط است. میدانیم اوقات میگید وجود به شرط شی؟ مثل وجود کاغذ، وجود میز، وجود کوه، وجود آسمان وجود است به شرطش گای اوقات میگید وجود به شرط لا ما یه وجود داریم به شرط لا از این کسراته هیچ کدام از این کسرات در اون وجود حیث تحقق ندارد اساساً در اون ساعت نفی می شود وجود است به شرط لای از کسرات این چی؟ وجود واجب تالا وجود واجب تالا در دیدگاه فلسفی وجود به شرط لاست خب می دانیم که این دوتا از دیدگاه وحدت شخصی وجود این قابل قبول نیست. بایونهای دارن از جمله لو گفت: تقدیرای وجود دارد که اساساً چنین تصویری از وجود محاله. ما اساساً در عالم نه وجود به شرط شی داریم که این جهانه که شما می‌بینید. به ادعا می کنید موجوده است. اینا هیچ کدام وصف وجود پیدا نمی‌کند. و نه وجود به شرط الله داریم در عالم که بگید واجب تعالی وجود دارد که او واجب است و بقیه ممکن به محضی که شما گفتید وجود به شرط الله یعنی میپذیرید های دیگری که غیر واجبند و واجب در اون ساعت حضوری ندارد اینم از دیدگاه وحدت شخصی وجود باطلی یه فرض سومی وجود دارد که بگیم نه وجود لا بشرط وجود را در نظر میگیریم نه اینکه به شرط لای از موجودات هست اون رو لا بشرط شرط میگیریم خوبه را فرماییم لا به شرط میگیریم گفتیم لا به شرط یشتم او مأه الف شرط. اگر من گفتم وجود لابشرط شما میگید آقا این وجود در این کتاب هم هست میان بالا است این وجود در خداوند هم هست هست دیگه, دیگه وجود لابشرط یجتم و مع کل شی کل خصوصیات میتواند در وجود لابشرط باشه نظریه وحدت شخصی وجود اینجا یه دقتی میکنه میگه از دیدگاه من وجود لا به شرط به که شما میگید نیست ما چی میگیم؟ ما یه وجود در نظر میگیریم اشیاء رو در نظر میگیریم حق رو در نظر میگیریم میگیم این وجود لا به شرط نسبت به این هاست. یعنی لا به شرط بودن قیدی برای وجود است. نظریه وحدت شخصی وجود میگه این مقدار قید را هم برای وجود نمیپذیرم حالا چرای بحثای مفصل داره؟ نمیپذیرم اگر لا به شرطیت شد قید وجود این دیگه نمیتواند در همه جا باشم این دیگه وحدت شخصی که من بخوام بگم نیست من وحدت شخصی را میگویم که هر جا در هر مرتبه ای در هر شیعی شما دست بذارید اون مقسم اون وجود اون وجود واحد شخصی بسیط حق به تمام هویت در اونجا حضور داشته باشه خب اگر من آمدم لا شرطیت رو گیت کردم میشه لاب قسمی لاب شرط قسمی دوباره مشید نه من وحدت شخصی میگم که لا به شرط مقصمی باشه یعنی چی وجودی را در نظر بگیرید که اصلا ملاحظه شرط در اونجا نشود من وحدت شخصی قائل به وحدت حقیقت وجودی هستم که نه تنها قید شرطیت و به شرط لا ندارد حتی قید لا به شرطیت هم درش نیست خب میدانی چنان که الان برس خواهیم کرد اصلا از همینجا خب نزاع پیدا چون بعضی آه وحدت وجود که چیزی نیست خب خیلی گفتن نه نزدیه حقیقی وحدت وجود ادعای این است که در عالم وجودی نیست الا وجودی که لا به شرط است، یعنی هیچگونه گونه تعین حتی تعین لابشرحتیت رو نداره ما معتقدیم چنین وجودی در عالم حقیقت دارد و غیر این وجودم هیچ چیز دیگری نیست یک وجود شخصی لابشرط مقصمی که تعین حتی لا ندارد حتی تعین لا تأیون ندارد این اصیل است این حقیقی است و هرچه هم غیر از او هست از نظر وجود باطله نمود اوست ظهور اوست اینجا یه بحث های مطرح شده دیگران مطرح کردن ما هم در جای دیگر چون بحث کردیم میخوام باید عدله بشن همینجا عرض کنم دو تا اشکال اصلی اینجا وجود داره اشکالم اشکال عقلیه آیا اساساً حقیقت لا به شرط مقسمی یک امر واقعی نفس الامر است یا فرض ذهن همه علما و فقهای ما شما تو علم اصول می بینید میگن لا شرط مقصمی مورد قبوله میگن هر تقسیمی مقصمش یه امر لا شرطه لاب شرط الکلمت ما اسم و فعل و حرف مقصمش لا شرط مقصمیه اما تو مقام مفهومه آیا در مقام واقع حقیقت نفس الامری واقعی یک امر لاب شرط مقسمی باشد که هیچ گونه حدی حتی حد لاب شرطی یاد نداشته باشه گفته شدایی امر ذهنی ها. یعنی خلط بین مفهوم و مصداخ شده آیون نشستن بر اساس تحلیل های ذهنی انتظاعت ذهنی به یه چیزی رسیدن به نام لاب شرط مقسمی باید رو تطبیق بر خارج کردن این بحث خیلی مفصلی است که یه مغالطه در اینجا صورت میگیره که مغالطه مفهوم مستاقه مثلا مستاق لاوجه شرطی در فرض و نفسانی هم نداریم یه بحثه بحث دوم بر فرض بپذیریم که ما چیزی به عنوان لاوجه شرطی داریم سوال اینه آیا شما غیر از این واحده وجود شخصی که وحدت لا شرطی دارد چیزی رو در عالم قائل یا قائل نیست کسلتی هست یا نیست اگر گفتید هیچ کثلتی نیست همه خیال است و وهم است و این خیال و وهم هم خودش خیال است سال این است که پس به نام انکار کثلت است این خلاف وجدان است عقل خلاف عقد است حتی خلاف مدعیات پاره صوفیان یا عارفان معتقد وحدت وجوده اشکال عقلیش اینه در مقابل وجود چه چیزی قرار داره شما اگر گفتید اون حقیقت حقیقت واحد وجود است مقابل چیه؟ یا عدم سوال این است کسرات در ظرف وجودن یا ظرف عدم حتی یک کثرت حتی کثرت واجبی اگر شما بپذیرید یک دونه کسرت به غیر کسرت در ساحت وجود است این با نظریه وحدت شخصی وجود منافات دارد. اگر بپذیرید که نه هیچ کدام از حیثیت های و کسرت در ساحت اون وجود نیست بگیم در ساحت کیه؟ در ساحت عدم مگر عدم تحقق داره مگر عدم تکثر داره شما میتوانید بگید جهان متکثر داریم همه اینا در ظرف عدم است نفرمای که اینا میگن عدم عدم مضاف عدم مطلق نه عدم مضاف رو هم منکرم عرض کردم هر وجود به شرط به شرط لا رو صورت مسئله داشته باشیم وحدت شخصی وجود ادعا میکند که در کل عالم آن چیزی که حقیقت دارد آن چیزی که اثر دارد آن چیزی که منشأ تأثیر است تنها یک چیز بیشتر نیست اون وجود لا به شرط مقصمی است که هیچ لحاظ تعین نداره حالا آره این اشکالاتی که من اس کردم در این دو بخش باشه می هم سراغ شما ما اصل مدعا رو در اون متناقض می داریم بحثش هم کردیم مناظرش هم کردیم اصلا نظریه وحدت شخصی وجود پارادکسیکاله اصلا خودش رو تونه توضیح بده قدرت توضیح خودش رو نداره مگر اینکه که بخوا بگه من این رو عرض کردم در بعضی از گفتگوه اون کسی که به ظاهر پایگذار این نظریه به عقلی و تیوری ابن عربی در هیچ کدام از آثارش یک تونه برهان بر وحدت شخصی وجود نیموند هرچی گفته مکاشفات است، تمثیلات است، از واقع است شعر. میگه من این رو یافتم شعود گردم شارهان ابن عربی و کسانی از برخی از تواف صوفیه آمدن برای این مدعا برهان عقلی اقامه کردند گفتن نه ما یه جوری توضیح میدیم این وحدت شخصی وجود که کاملا معقولم هست بلکه برهانم داره اثبات میکنیم وحدت شخصی وجود حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در این تحریر تمهید قواعد در اون بخش پایانی البته بعد افزودهی هم دارد که اون رو همیشه عزیزان ببینند تک تک این عدلده رو استقرام میکنند البته رؤوس این عدلده رو تقریر میکنند و یکایک این عدلده رو مورد بحث قرار میدن انبان بحثشون نقد و نقد براهین وحدت موجود خب تعبیر موجود هم میشه برای اینکه وحدت موجودش مسلمه وحدت وجودش مشترک از بین نظریه تشکیک وجود و وحدت شخصی وجود اگه کسی به بوید وحدت موجود این دیگه نظریه خاص وحدت وجود رو خواهد. یعنی یک موجود در عالم بیشتر نیست و همون واحد شخصی است که هست. ایشون در جنبندیشون نسبت به براهین من یک سیری میکنم که خب عزیزان دیگه خودشون مراجعه میکنن اهل پجوهش در این زمینن ایشون ابتدا شش برهان رو از مجموعه آثار اهل عرفانی که خواستن دلیل بیارن برای وحدت شخصی وجود شش برهان رو اول اقامه میکنن بعد خودشون یک برهان یا دو برهان رو باز اضافه میکنن بر این شش برهان بعد میفرمان این هفت هشت برهان هیچ کدومش اعتبار نداره نقد میکنند بعد می رسند به اون برهانی که مرزی خودشونه و فکر میکنن با اون تقریر میتوان وحدت شخصی وجود رو اثبات شش برهان اول که حتما به سمع و نظر عزیزانم رشته در ادبیات عارفان و صوفیانم مطرح میشه برهان اول و دوم چیه این برهان ادعا میکنه که وجود حیث هو همین وجود واحد شخصی اعلام نه قبول عدم میکند لا یقبل الادم هیچ گونه فرض عدم درش راه ند و هر چیزی که فرض عدم درش راه نداشته باشه این ضرورت ذاتیه ازلیه ما از کجا برسیم به اینکه جهان، جهان جهان موجود جهان حقیقی خارجی این وجود لا مقصمی است وحدت ضروریه ازلیه داره یه نشانه داره نشانش اینه واحد ضروریه ازلی اونیست که فرض عدم در او را نداره حالا ما کلاه رو قاضی میکنیم عقل رو میاریم روی میز میگذاریم آیا وجود عالم وجود از اون جهت که وجود است حقیقت وجود میتواند قبول عدم بکنه امکان نداره. این برهان میگه. اگر بخواد قبول عدم بکنه یکی از این دو راه در پیش داره یا اجتماع نقیزین لازم میاد لازمش این است که وجود از اون جهت که وجود است در این حالی که وجود عدم باشه. یا لازمش انقلاب میاد. یعنی وجود وجود است، میخواد عدم بیاد. اگر وجود بره و بخواد عدم بیاد، باید وجود منقلب بشه به چی؟ به عدم، انقلاب محال. انقلاب وجود به عدم محال. تقریبا برهان دومی هم که ایشون تقریر میکنند و در میراث عرفانی هم وجود داره اون هم قریب به همین مضمونه من تکرار نمی کنم فقط حال هوای برهان میگم، ایشون بعد یه اشکال مشترک به همه اینا وارد می میگن همه اینا یه پیشفرض داره که او پیش باطل برهان ثبوتی که اقامه می این است که میفرمان فرمان لولم یکن الوجود به ما هوا وجود واجبا لکان ممکنن لار که نتالی باطل ما نظر میکنیم به وجود وجود که قبول داریم اصل وجودی که قبول داریم, داریم. میگیم وجود یا واجب است یا ممکنه چون این فرماد واجب نیست اگه بگید واجب تصدیم شدید تمام یعنی فرض ادم نداره فرض امکان نداره اگر گفتید ممکن است مناش این است که امکان رو در ذات وجود داخل کردید امکان که وارد میشه یعنی فرض ادم میاد داخل در وجود قرار میگیره لیکن نتالی باطل یعنی نمیتواند وجود به ماهو و وجود ممکن باشد فلمقدم و مثلو چون وجود از اون جد که وجوده وصف امکان پیدا نمی وجود با است با قید داشتن ماهیت است که ممکن میشه به الا نظر بحثه وجود میکنیم اصل وجود واجب برهان چهارم این است که الوجود این تعبیر الوجود من و وجود در تمام این برهان ها تکرار میشه. من کار به وجود اینواع ندارم کار به وجود واجب و ممکن ندارم به خود وجود از اون جهت که وجود است توجه میکنم من وقتی نظر میکنم به وجود از اون جهت که وجود است میبینم این وجود نه جوهر است نه عرض خود وجود که جوهر نیست خود وجود که عرض نیست وجود به قید یک چیزی جوهر میشود یا می میشود خب از اون طرف میدانیم جوهر و عرض مخصوص ممکنه کلو ممکنه اما جوهرون او عرز. پس وجود به به بما هو وجود جوهر و عرض نیست اگر چیزی جوهر و عرض نیست ممکن نیست اگر ممکن نیست واجب است پس میرسیم به وجوب ضروری ازلی در وجود به همین ترتیب یه برهان پنجمی اقامه میکنن و یه برهان ششم چون وقت که من ایشون نما تمام برهان که بزرگان از اهل عرفان و متصبفی هم استدلال کردن یه اشکال داره او اشکال این است که پیش فرضش این است که اساسا ما وجود به ماه و وجود در خارج داریم اشکالو ایشون مطرح میکنن. کنن کردم ایشون یه تقریر از برهان یا از وجوب امکان قبول دارم. میفهمم کل استدلال هایی که تا اینجا خود اصحاب وحدت وجود کردن بزرگترین اشکا اشکالات خرد دیگر میکنن در هر برهانی دو سه اشکال دیگر مطرح میکنن اما اشکال اصلیش این است صاحب این برهان تصور کرده ما در عالم خارج وجود به ما و وجود داریم اصلا اصل استدلال و برهان اثبات وجود ما و وجوده گفتیم کسی قائل به وحدت شخصی وجود است میگوید آنچه در نفس الامره است در متن واقع است این وجود به ماه وجوده خب سآل اصل این وجود ماه وجوده کجا اثبات میکنید مفروض شما گرفتید در این براهی یعنی مصادره مطلوبه مفروض گرفتید در عالم یک وجود لا شرطی داریم وجود ماها وجود داریم دارید روش استدال میکنید میگید اگر این وجود ماه وجود باشد ممکن نیست اگر این وجود ماها وجود باشد عرض و جوهر نیست خصم شما میگه اصلا چیزی میچن وجود ماها وجود نداریم عرض کردم میگه وجود ماها وجود فرض ذهنیه انتظاع شما نسبت دقیقت حقیقت خارجی است حقیقت خارجی یا واجب الوجود است یا ممکن وجود است در ممکن الوجود یا عقل است یا نفس است اینکه شما ادعا می‌کنید ما چیزی به نام وجود به ما و وجود داریم این رو هم مقدمه استدلال قرار میدید دست مدعای شماست شش تا برهان اقامه شده مبنای این شش تا مصادر مطلوبه یعنی چیزی رو که باید اثبات کنه مبنای استدال قرار داده خب این هیچ این شش تا بعدشون می‌فرماین یه برهان هفتمی هم دیگران اقامه کردند این گزارش‌ها گزارش خیلی مهم و دقیق است دوستان که نمیتونن به متون اصلی عرفانی مراجعه کنند تقریراش در این کتاب آمده ایشون فرمان غیر از این شش تا که مشکل مصادره مطلوب داره و اصلا برهان نیست به نوعی یک مقالطه در اینجا داره رخ میده یک برهان یا دو برهان دیگر هست که او صورت معقولتری داره الان معروف هست در ادبیات عرفانی به برهان مطلق مقیعت برهان مطلق مقیعت چی میگه؟ میگه ما قبول داریم وجود همه چه قالین وحدت شخصی وجود چه مخالفی همه در یک نقطه مشترک هست و اون پذیرش اصل وجود در آلم خارجه وجود مقیم آیا شما قبول دارید وجودی در آلم هست یا نه؟ بله قبول داریم من حد وجدان وجود خودم رو میکنم یه وجود مقیم یه مقدمه مقدمه دو اثبات میکنیم هر جا مقیده است باید مطلق ما محال است در جایی شما مقید داشته باشید مطلق نداشته باشید مطلق چیه؟ همون وجود لا به است. این برهان دو تا تقریر داره که از توستاد در اینجا دو تقریر رو با هم آوردن و خوب بود که این از هم تفهیقی میکردن یه برهانش اینه که ما هر جا مفهوم مقید میبینیم مفاهیم مقید چیزی نیستند جز ترکیب چند مفهوم مطلق. یه ادعا شده که ما هیچ جا مفهوم مقید نداریم مگر چند مفهوم مطلق. مثل چی؟ شما مید انسان عالم عادل. خب بظاهر اینطوره دیگه ما مقیدش کردیم. وقتی دقت میکنیم تقیید وجود نداره. انسان مطلق است. عالمم مطلق آدلم مطلقه کنار هم تبدیل میشن به مقید مدعی مستدل داره میگه کنار هم اگر ما این مطلقها ها رو نداشتیم امکان تغییر نبود پس هر جا مقید داریم مطلق داریم شما میپذیرید وجود مقید رو بلی میپذیریم پس ما ما بپذیریم اگر پذیرفتید وجود زید وجود بکر وجود انسان عالم عادل رو باید بپذیرید هم انسان مطلق داریم هم عالم مطلق داریم هم عادل مطلق داریم هم وجود مطلق خب ایشون در پاسخ می‌فرماوند که این که استدلال ربطی به مدعا نداده شما قرار بود وحدت وجود اطلاقی سعی در عالم نفس الامر اثبات کنید این برهان ثابت میکنه وحدت وجود مفاهیم رو میگوید هر جا مفهوم مقید است باید مفاهیم مطلق باشد بینهما بونون بعید ادعا این بود که در جهان در عالم هستی ما فقط وجود مطلق داریم اونم مطلق سیئه لاو بشارتی استدلال این است که ما یه مفهوم مقیدی داریم این مفهوم مقید نیازمند مفاهیم مطرق داریم این که ایشون می اصلا ربطی نداره تقریر دومی وجود دارد که او رو هم ایشون نقد میکنن، اما زمنن او تقریر اینه بسیاری از معاصرین دیدم کتاب نوشتن در عدله وحدت شخصی وجود اینو بیشتر میگن چون ظاهرن یه خود نرخ شعباسیه این تقریر هم اصطلاحا مربوط است به تقریر مقید و مطلق اما تقریرش اینه نه اینکه مفاهیم مقید نیازمند مفاهیم مطلقا واقعیت مقید بدون واقعیت مطلق ممکن نیست اینو خیلی گفتن خیلی میگن سوال میکنن آیا شما وجود مقید رو قبول دارید یا ندارید بله قبول داریم خودم قبول دارم آسمان زمین هست خب ما اثبات میکنیم هر جا وجود مقید است باید مطلق هم باش چرا؟ چون مقید یعنی مطلقی که قید خورده است، پس مطلق هست یه قیدی هم خورده اگر شما میگید وجودات مختلف وجود دارد وجودات مقید من رو هر وجود مقید دست بگذارم میگم این مقید مقید نمیشود الا این یه مطلقی باشد با قید خاص بیانید برهان ازی روشنته؟ هر جا شما مطلق داشته باشید این دیگه نفس الامر مقید خارجی وجود مطلق خارجی میخواد ایشون دوباره به یه بیان دیگری می فهمونن برهانم تمام نیست اینم یه جور مصادره مطلوبه چه کسی گفته هر جا در عالم خارج وجود مقید است باید وجود مطلقی باشد که اون وجود مطلق با قید تبدیل بش وجود مغایر این اصل مداد شما قرار بود برهان اقامه کنید برای اینکه در جهان وجود مطلقی است اگر من کثرات میبینم اینا تغییدات اون این اینو جزء اصلا برهان گرفتی یعنی مددار رو توی دلیل آوردید تکرار دارید میکنید ایشون میفرموند اینم که برهان نشد چه کنیم وحدت شخصی وجودی همه اصله های عقلی ازش گرفته شده تا اینجا ایشون میگن ما راه های جدیدی رو فکر کردیم و به نظر می اون میرسه اون راهها می میتواند دلیلی بر وحدت شخصی وجود باشه دو راه رو ایشون در اینجا پیش میکنن در بعضی از آثار دیگه هم این استاد بزرگوار ما و هم دیگران راه های دیگری هم گفتن حال دو راهی چون در اینجا آمده وقتم نیست من سریع عرض میکنم و عرض میکنم که تقریبا همون اشکالات که به دیگران فرمودید به اینجا هم وارده اون دو دلیل چیه دو برهان یکی میگن مرحوم علامه تبا یه برهانی اقامه کردن برهان, برهان صدیقی یعنی تقریر ایشون از برهان صدرایی که ادام میکنن برخلاف خلاف سایر تقریرهایی که از برهان صدیقین شده این برهان ویژگیش این است که میتواند وحدت شخصی را اثبات کنه چرا؟ چون در سایر برهانها اصالت وجود رو پیش ورز میکنه وجود رو پیش ورز میکنه بعد میاد تلاش میکنه از درون اشتراک معنوی وجود و اصالت وجود این وجود واحد شخصی رو اثبات کنه ایشون نفهمون چنین برهانی نمیتونه وحده شخصی نسبات کنه چون عرض کردم در وحدت شخصی از آقاد وجود لاب شرط مقسمی منظوره اگر شما اسالت وجود را آوردید به عنوان پای قرار دادید اصل برهان زیر سوال بردید مرحوم علامه تباتبه این کاری کردم ایشون یه تقریری از برهان صدیقین دارن ایشون میفرماد که مرحباً به ناصرنا خود آیتباتبه ای چه نستدالی بر وحدت شخصی ندارن او ایشون از برهان صدیقین استفاده میکنن که میتواند این برهان برهان به سود وحدت شخصی باشه او برهان چیز خلاصش این است ما به جایی که از وجود آغاز کنیم از واقعیت آغاز میکنیم سوالمون اینه آیا در نفس الام واقعیتی هست یا نیست واقعیت و ما نمیگیم وجود نمیگیم ماهیت هیچی هیچ خیلی نمیزنه. آیا واقعیت و ما رو قبول دارید یا قبول ندارید دو حالت داره یا شما میپذیرید اون واقعیت و ما رو یا نمیپذیرید اگر, پذ... اگر یک کسی بگیره ما میپذیرم اما به نحوه امکانی میپذیرم میگم وجود دارد موجودمون ممکنه احتمال خلاف میدهیم میگه این سبسطه است اگر کسی بگوید واقعیت دارد به احتمال میدم واقعیتی نداشته باشه ایدار سبسطه میکنه دو چهار شو اگر شما میخواد از سبسطه در بیایید من خیلی سریع دارم برهانو میگم شما باید بپذیرید که واقعیتی هست و احتمال خلاف در اون واقعیت نیست ایشون میفهمونه هم که احتمال خلاف رو بر یعنی ضرورت واقعیت رو پذیرفتید گام اول رفتیم چی اون واقعیت اون واقعیت و ما یا احتمال خلاف درش میدهیم که شاید اصلا واقعیتی نباشد شاید سفسته درست باشد به محضی که شما احتمال دادید دوچار سفسته میشید چه زمان میتونی از سفسته در بیایید شما بیده اون واقعیت هست به هیچ احتمال خلافی ندارن یعنی اون وجود ضروریه یک پس اصل ضرورت واقعیت الواقعیت و ضروریه ثابت شد این کافیست برای وحدت شخصی نه کافی نیست شما وحدت شخصی واجب ازلی رو خواستی نسبات کنید باید اینو لا به شرط مقصمی رو اثبات کنید این رو چجوری اثبات میکنیم؟ میگیم میرم قابل اثباته میام دوباره بر سر اون واقعیت ضروری خارجی میگیم این واقعیت ضروری خارجی آیا به شرط یک چیزی واقعیت دارد؟ او واقعیت به شرط واقعیت دار بودن ضروری است اینجوری اگر بگی؟ او واقعیت در این شرایطی که من دارم میگم ضروری است، همون ممکن است با یه قید دیگری ضروری نباشی باز ایشون میگه اگر اینو گفتی این معناش این است دارید احتمال میدهید که واقعیتی نباشه دوباره سفصدی یقیه شما رو بگیره اوغلا میگن ای احتمال رو همچیه برمیدانیم از ضرورت دستیم به ضرورت ذاتیه هنوز یه پله دیگه راه و بیش ضرورت ذاتیه ازلیه لاشرف مقصدی او چجوری ثابت می‌کنید اثباتش این است میگم اگر شما گفتید سفسته یعنی شما میخواد بید احتمال بذارید و ضرورت ازلیه رو انکار بکنید یه فرض بیشتر نداره که احتمال بدهید ولو به احتمال امکانی بدهید که ممکن است این واقعیت واقعیت نباشد شما یه حرف زدید بازم ما ثابت می‌کنیم که یه احتمال هم متفیه چجوری ثابت می‌کنیم؟ بگیم دو حالت داره. یا سفستهی که شما احتمالش میدهید واقعیت دارد یا واقعیت ندارد اگر گفتید سفسته باطل است، پس پذیرفتید که حقیقت و واقعیت هست ضروریه اگر گفتید که نه سفسته میتواند درست باشه یعنی واقعیتی نباشد ما میگیم پس بنابراین واقعیتی هست که شما میگید گذاره سفسته بر او تطویر میکن حال آره یک انگل طولتی هم دارن خب در اینجا ما ارزمون این است که ظاهرن هم اینجا یک خطای جدی اتفاق افتاده اول اینکه که واقعیت دارد دوباره این اشکال قبل وارده این واقعیت و ما هست یا واقعیت به و واقعیت اشکالی که شما بر اون برای برهان, برهان کردید ما اعاده میکنیم اگر واقعیت واقعیت و ما هست این حجت حق صادق نیست اشکاله اشکال دوم شما میفرمایید اوغلا احتمال سفصته نمیدهن چون احتمال نمیدهن ضروری است این مقدمه با این تالی چه ارتباطی داره؟ آیا اگر من یه گزاره ای را به صورت قطعی بهش اعتقاد دارم ضروریه؟ یعنی همه گزاره های یقینی ضروری هم هستن؟ یعنی نسبت میان محمول موضوعشون ضرورت داره؟ اشکال دو اشکال سه کل بحثی که شما مطرح میکنید ما در جای دیگه اینا رو به تفسیری بیشتری بی... کل این بحثی که جاید مطرح میکنید در فضای معرفت داره اتفاق میفته اینا ضرورت های معرفت شناختی اینجا خلط شده بین ضرورت های معرفت شناختی و ضرورت های هستی شناختی داستان در وحدت شخصی وجود اثبات حقیقت ضروری ازلی در نفس الامره اینکه من نمیتوانم کار کنم یا گزاری صفصت درست یا نادرسته این رفتی به نفس نداره. ناداره ایمان مقام ذهن منه مقام معرفت منه اساسا یه خلط صورت گرفته حتی اگر برهان صدیقین درست در بیاد که این اشکالات بهش وارده باز برهان صدیقین واجب رو اثبات میکنه نه وحدت شخصی وجود یه اشکال چاره ایشون میفهمان غیر از برهان صدیقین ما یه برهان دیگری هم داریم که صدرا در جلد دوی اصفار مطرح کرده. و اون چیه این است که اگر ما بیایم اول از طریق ایلیت او از طریق برهان صدیقین ای از طریق چه چجوری صدرا اومد در جلد دو دوستان که اصفار خوندن و می میدانن اول شروع میکنه اصفار با ایلیت به معنای کلامی بعد علیت به معنای مشایی تواین وجودات بعد کم کمی رو تبدیل میکنه به فقر وجودی معلوم نسبت به علت میاد تو وحدت تشکیکی آخرش مولا صدرا یه عبارتی داری خیلی معروف جایی مختلف نقل شده میگه آقا وقتی من نگاه میکنم دقیق میشم توی علیت میفهمم که حقیقت علیت معناش این است که علت هست معلول نیست علت حقیقت دارد و این وجود است معلول شعنی از شؤون علت میگن با همین سیری که صد را کرده ما میتوانیم برهان نقام کنیم از طریق تلطیف و تدقیق در معنای علیت چون نمیخوام تفسیر بدن جای دیگه این بحث شما فصل کرده این خب اینجا چند تا اشکال داریم اول که خود صدرآ در اونجا هیچ برهانی اقامه نکرد. به حکمت ارشیه تمومه. این هست تا می سوالات رو. اینجا من سوالات رو این, سآلات شده شده. این آخرین بحث من باش خیلی کوتاه عرض می‌کنم. شما میفرمایید از مسیری که صدرا در اسفار رفته و علیت و مطرح کرده بعد روش تدقیق کرده خیلی ظریفش کرده آخرش گفته ارشابت من به این نظریه رسیدم و معلول دیگه وجود مستقل نداره بلکه وجود ربطی هم نداره شعنی از شعون علته این همون نظریه وحدت است که ما دنبال میکردیم خب عرض اول ما این است که مولا صدرا در اونجا خودش میگه من این را از طریق شهود به دست خودش هیچ برهان اقامه نمیکنه، کنم یعنی صاحب نظریه که برهان اقامه نمیکنه ما چجوری به قولش مولان یه برهان تمسو کنم دو چگونه بر اساس تدقیق در علیت که مفروض میگیرد دعیت میان علت و معلول رو دعیت وجودی علت و معلول شما میرسید به وحدت وجود لاب شرط مقصرمی چیز داره مثل این است که من بگم تدقیق میکنم در تقسیم مثلا جهان به جوهر عرض بعد بگم جوهر عرزی نیست آه تدقیق روی مسئله یعنی افتحال اون مسئله اگر اون رو افتحال میکنی باید بنابرای اگز... مبنی درست کنیم پس بنابرای از تدقیق در علت و معلول هم تشاؤن به درست میاد تازه تشاؤن به معنای شما در وحدت وجود میگید این رو من عرض کردم این فرصت بود عبارت میخوندم عبارت صدرها در اینجا ظهور روشن دارد که در اینجا دعیت رو پذیرفته دویت علت و معلول رو پذیرفته میگه اون معنایی که ما در وجود رفتی میگیم اینجا نیست از او زریفتره. زریفتر بودن با وجود. لا به شرطی که مددهای شماست تفاوت میکنه و اشکالاتی از این دست خلاصه کنم در بحث ادله وحدت شخصی وجود بنابر خانشی که من در این متن از یک شخصیت عالم نخبه اهل فن در این هرسه گزارش دادم ایشون میفرمان شش دلیل از اون ادله مسادر مطلوب است اولا جایگاهی ندارد نقض خودشه دلیل هفتم و هشتم هم به شکل دیگری دوچار اشکال است که توضیح دادیم نهایت ایشون تکگاهشون رو ادله عقلی در دو دلیل میگذارن که این دو دلیل هم اثبات کردیم که این دو دلیل هم خافی نیست به یک کلام من ارز مخواهم بکنم اساساً مسئله وحدت شخصی وجود دلیل پذیر نیست این رو صاحب این نظریه که ابن عربی پذیرفته در بعضی از مناظرات و گفتگوهای ما دوستان میدونن اونجا عبارت خوندم ابن عربی در آثارش بکررات در فتوات مکیه استراحت میگه نظریه وحدت شخصی شهود من است من شهود کردم حتی میگه در اونجا تناقض رواست با همین تعبیر میگه کسی که به ساحت شهوت وحدت وجود میرسه اصلا مسئله جمع میان وجود عدم اشکالی نداره اصلا اونجا ساحت ساحت تناقض نیست خب چجوری شارهان این اندیشه که خود صاحب اندیشه معتقد است که اون اصلا به سراحه میگه تورون و راه تورالعق عبارت ابن است در مد وحدت شه میگه اصلا یه می چیز دیگریست ربطی به عقل نداره عقل اصلا قدرت در که وحدت شخصی وجود رو نداره این که من ارزمین بارها هم گفتم در بحث وحدت شخصی وجود اگر کسال تفسیرهای دیگری ارائه میکنه او بحث دیگریست وحدت شخصی وجود که لا به شرط مقسمیست که میخوایم نتیجه فنای فلا بقای بالله رو بگیریم انسان کامل رو بر اساس او تفسیر کنیم و امثال اینها تو اون تفسیر سوپیانه و عارفانه این اصلاً دلیل پذیر نیست. خیلی نباید در اینجا زحمت کشید. حالا عارفان به دلایل نقلی پرداختن، بعضی به دلایل وجدانی و شهودی و داستان دیگری است. از نظر ما و از نظر اهل خبره که قولشون رو نقل کردم اساساً وحدت وجود وحدت شخصی وجود دلیلی ندارد و مدلل نیست والحمد لله رب العالمين و صلی الله محمد و